ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والسابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتحدقين والمتحدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وعجرا عظيما صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكات وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحللاقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم حضار گرامی و سامعین محترم ای سیو پنج از احزاب سورۀ سوس قرآن مجید به حضور شما تلاوت شد الله ز جلال در این یک آیه در حقیقت خلاصه دین را بیان فرمودند دین ما عبارت است از چیز یکه اعتقادیات دوم عمال و سوم اخلاقیات و در این آیه هر سه چیز مورد بحث قرار گرفتن ام صحبت روی اقیده هست و ام صحبت روی عمال هست و ام صحبت روی اخلاق اگر ما سه چیز را داشته باشیم دین ما کامل هست اقیده درست عمل درست اخلاق درست این سه چیز را داشته باشیم دین کامل هست و اگر ما همین سه چیز را به کل دنیا ابلاغ بکنیم که عقیده درست نسبت به خدا و فرمایشات خدا داشته باشید امال نیک را انجام بدهیم و اخلاق خوبی داشته باشید کل عالم آباد می شود رسول الله صلی الله علیه و می که وئت ل اتمم مکارم الاخلاق من شدم که مکارم اخلاق را اخلاق و خلق و برای انسانها بیان بکنم و قرآنم به پیغمبر می که انکل آلا خلق عظیم، ثمر برخلق عظیم حسین. این آیه در حقیقت جواب یک سوال است، و اون سوال به این صورت است خود سوالم دو تا جنب دارد یکی این که قبلا صحبت از امسران پیغمبر و آل بیت پیغمبر بوده خداوند نسبت به امسران پیغمبر و آل بیتش در آیه 33 امین سوره 33 قرآن می که انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و یوتہ ہراکم تصحیرا علماء پیغمبر رامی فرمائیں کہ اللہ این اراده را کرده کہ از شما آرزوگیاں دنیا را دور بگرداند و شما را پاک بکند به کردنی پاک کردن و خوف بہ معنوی را در خانه فیغمبر و خانواده فیغمبر بیارد که آل ویت فیغمبر عبارتند یک همسران گرامی فیغمبر دو آل علی سه آل عباس چار آل جعفر که برادر علی باشد پنج آل عقیل که اونم برادر عضرت علی هست انار و ال سنت و درجه اول آل بیت پیغمبر امسران پیغمبر رمیدانان و چهار گروه دیگر نیز جز آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله هستند آل سنت و آل بیت را ما منحصر به چند فرد نمی کنیم ما میگیم هر پنج گروه را آل بیت رسول الله تشکیل میدهم اما صحبت اینجا از امسران پیغمبر هست که زمانی که خیبر شد و مسلمانان خیبر را گرفتند قبلا آل مسلمانان خوب نبود اما وقتی که خیبر و اطراف خیبر به دست مسلمانان افتاد مسلمانان در حال رفاه بودند زمینای خوبی باغهای خوبی که یهودیان شکست خوردند که در اطراف مدینه بودند شرارت میکردند اما وقتی که شکست خوردند همه اونها به دست مسلمانان افتادند به دست مسلمانان افتادند و مسلمانان در حال رفاه قرار گرفتند چنانچه در حدیث میاد که ما وقت نماز و جمعه می آمدیم مسجد سقفش پشکوتا بود ما اون کارگر بودیم لباسی خوبی نداشتیم لباس های کونو باستلافارو چرکینی بیتانی ما بودن عرق میکردیم کردیم انجام بود عرق میکردیم کردیم این بوی تعفون ما یک دیگر را عذیت میکرد رسول اللہ فرمود که شما لباسی ستا پوشید، اگر نوی ندارید استحمام بکنید حمام برمید و برای نماز بیایید. غسل روز جمعه را پیغمبر واجب قرار داد که شما حتما بدن خود را بشوید و بیایید به بی مسجد اما زمانی که خیبر و اطراف مدینه قد شدن کار به موضع دیگران افتاد ما کار نمی کردیم و آل ما خوب اینجا غسل سنت گردید واجب نبود ما بالباس های جدید یا بالباس های شسته داخل مسجد می آمدیم و عرام می کردیم این عرام ما تبدیل به تعفن نمی شد وقتی اون فتوحات نصیب مسلمانان شدند زندگی مسلمانان تغییر کرد دیگرگونی در زندگی اونا آمد اما حضرت رسول صلی الله علیہ وسلم زندگی خود را تغییر ندادن رست بود نظافت حرف اول را در خانه فیغمبر می زد. اما از نظر غذا و اینا فیغمبر زندگی خود را تغییر نداد همسران فیغمبر گفتم قبلا که چیزی نبود ما حرفی نداشتیم الان که همه چیز را توی فیغمبر از همه مردم غذای خوب میخورن لباس خوب میخوشن خانه خوب برای خود روز کردن اما ما چرا در زندگی اولی مانده ایم حضرت رسول اللہ اونا را جواب نداد علت جواب ندادن این بود که اگر پیغمبر به درخواست خانمها جواب میداد هر روز یک می کردن از پیغمبر بی رسالتش بی تبلیغش به اون وظائفش نمی رسید بین سنگب زندگی من من طوری ساده هست دو سی مرتبه خانمها آمدند اتراک پیغمبر اگر او سن خانمهای خود پیغمبر تی زندگی ما باید تغییر بکنی من پیغمبر جواب نداد آخر طوری شد که پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطم خورد که من تا یک ماه خانه شما نمید اگه روزگارین باشد همون بود که رب دیگه جایی و لر اینجا بود که مشهور شد که پیغمبرم سران خود را طلاق نبود حضرت عمری فرمین که من خبر شدم خیلی فریشان شدم رفتم اونجا گفتم ایز مردم هم فریشانان داخل مسجد مردم جمع شدان و فریشانی همه فرایشانی همراه فراری رفته و هم ام فرایشان هستن. میگم من وقتا مشعیم جایی است ای اونجا رفتم، پیغمبر علیم برده خانه ای بود. بلال اونجا استاد بود. من با بلال صحبت کردم. کر سلولام اونجا استقبالی. ای علیم برده صداهی اون را شنید که کسی از من سوال میکنه که هست گو عمر و مگو مگو بیای اونجا. اینجا وقتی که رفتم نیزم پیغمبر روی اثر خوابیده، یک مشکی کوچیک کمی آب دارد، و یک کمی غذاهای آرده، پخته گندم که سوییت میگن به زبان عربی هنوم در دیوار آبیزانه. پیغمبر بولان شد من که اون آثار اثر بر باغال پیغمبر بود، مگه من گریه گریه، ام باعث شاهان ایران و روم در بیشترین بسترها خوابیدن. ای فی شما روی حسیر خوابیدهیم و عمر اما ثردا ایکون نه مدنیا ورنال تو راضی دنیا برای اونا برسد آخرت برای ما زندگی من ای پیغمبر خود را تلاش کردهی کو اکنون خیر یکی من طوری شده و بنوانی ولتی ماشوم نارگو دستم یک وہ و میخانه اش ما از من چیز من نمیخوام خوام انطوری زندگی داشت باشم. آشان از یک ماه آیه 28 و من سوره من سور اعذاب نازل می شود که یا ایوها النبی قل لی ازواجکا ایو پیغمبر برو بگو به امترانت این کنتون تردن الحیات الدنیا و زینتها اگر شما اراده این دنیا را دارید تجملات و آرائش این دنیا را می فَتَعَالَيْنَ هَمَيْ شُمَا بِيَعِيلِ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُصَرِّحْكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا همَيْ شُمَارَ مَن ارچی که می خواهید به شما می هم و شما را میکنم می کنمو از این خانه بیرون می این خانه خدیجه است. خدیجه همه چیز خود را برای دین گذرشت در شیبی عبی طالب باشی از دنیا یک مشت خورما دست ما که اون بخوره. یا تحریم بودیم شما می خواهید در خانه همه چیز دنیاوی درشت باشید اگر زینت دنیا را می خواهید ایراد ای دنیا را دارید برنید بشما هر چیمی قائد میده هم اما شما رازین خانه بیرون دید اولین خانمی کے پیغمبر بخانه اشمیر از عزیز آئیشه ایسی دیگر رضی اللہ تعالی آس نختر ایسی دیگر یا اکمار ابو برنی ایسی دیگر بیگرد من برائی شما آیی ایمی خانم این آیه رسوان با من جواب بجید روی تصمیم نگیری دیگر شیعی یا النبی قل لأزواجك إن ان کنتن الحياة الحیات وزينتها وزینت آفت امتی کنن و اصرح کنن صراحا الله شما ربی خوبی راہ اما وین اگر من رمی و رسول رمی و و قیامت را می خائید فإن الله عاد للمحسنات من کن عجر عظیم برای شما بهترین مطر در نظر گید وقتین جمله را حضرت عائشه صدیقه مش نوات اے رسول اللہ اثیقت اشابر و ابویا در باری سمن مشور بکنن با فدر و ما در من در نکای رسول اللہ باشم از تلاق بگیرم نا خیر من اراده الله را درم اللہ را می خاهم رسول اللہ را می خواهم و درجات آلیه بشت را می خواهم آدن خداوند چند جمله گفت که یعنی سا النبی ای امسران پیغمبر لستنک احد من النسا شما مانند زنان معمولی نیستی در این خانه بر کباب و جوج کباب نیست اما جبرائیل میمان شما قرآن نازل می کنند مستقیم در این خانه وحی میاد در این خانه حکمت و احادیث پیغمبر صلوات میشوند. و شما این نعمت ها را کم میگیرید، خداوند خداون ستا پاداش به امسران پیغمبر داد. یکی امین آیه تفیر که خداوند شما را از آنودگیه دنیا پاک کرده در این خانه اون مسائل دنیوی چه مباه هستند نباید بیان معنویت شما کم می شود دوم پیغمبر اجازه ندارد که بر سر شما دیگه ابوی بیارد امین نو تازن که شما جوز مختصات پیغمبری نو تازن که شما در نکای پیغمبر هستید شما دائم در دنیا و آخرت امسار پیغمبرید و سوم پیغمبر اجازن که از ان بباد دیگر خانم رنبر پر شما بیارت در مقابل سی چیز خداوند بنا سی چیز داد. در مقابل غضاء خدا در مقابل نکھائی پیغمبر و در مقابل اختیار آخرت خداوند ان سی چیز را بنا داد یا فضائل آل بیت بیان شدن سایر مسلمانان گفتن که این فضائل برای آل بیتی فیغمبرن ما چه یا حتی ام سلمه که امسر فیغمبر بود که همیشه خداوند از مردها در قرآن صحبت می کند از زنان صحبت نیست خداوند در اینجا هر دو گروه را یاد کرد اول امم شفی رحمه الله می فرمند اگرچه که در آیات قرآن وقتی خطاب به مردها میاد، قران را شامل می شود اما گای گاه خداوند در مسائل خیلی مهم از زن و مرد را مساوی ذکر میکند و احکام را مساوی ذکر می میکند و از این معلوم می شود که الله جل جلال اون کسانی که عقیده درست، آمار درست، اخلاق درست دارند، اونا را خداوند پسند میکند مورد پسند الله هستند جنسیت در کار نیز کہ ان مرد این ان ذن حس چھن راد حس چھکس حس چھ گروی حس بین علیت اللہ ازالجلال ان سوال را جواب داد کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات فآخر در اینجا اول صوبت از اسلام خود ہے در حدیث جبرائیل اماز کے حضرت جبرائیل آمد جایی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفت که اسلام چیز دوباره گفت ایمان چیز و بعد از اون گفت که احسان چیز وقتی امدت برپا می شود چهارت سوال را جیبرایل از ازانت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمیدن گفت اسلام تسلیمی ظاهری هست موقع تیز تسلیم شده من مسلمان گفته می شود خاندن لا اله الا الله محمد رسول الله، اتامی فنج و نماز ادائی زکات، گرفتن روزه حج بیت اللہ ترمود که اسلام نه. پیغمبر به جبریل جواب داد در حدیث مشکات حدیث جبریل معروف ہے ایمان چیز ایمان امور چیزی که دائم من برای شما ذکر می کنم عزیزان که ایمان به خدا ایمان به ولائکه خدا ایمان به کتابهای آسمانی ایمان به انبیا، ایمان به آخرت ایمان به قضا و قدر الهی هرچی که بر سر ما بیاد از طرف خداوند این را ایمان میگویم ما در اینجا مسلمین و مسلمات یعنی ظاهرا انسان تسلیم بشود اون پنج بنای مسلمانی را داشته باشد و ایمانم امون شش چیز هست انجا صفت ثوم برای مؤمنان قانتین و قانتات هست خود قنود یا عزرت ابراهیم را خداوند فرمین که ان ابراهیم کان امتا قانتا قانت یعنی مطیع متنقی الله. که متنقا اطاعت خدا را داشته باشد فرمان خدا را بردار داشته باشد فرمان بردار اللہ زلجلال باشد این اطاعت که قنوط و قاند تعبیر شده در بار هم هست که خداوند من می فرمین حافظو على صلوات و الوسطا الوسطى وقومو لله قاندی سر نماز باید کاملا ساکت باشیم این طرف و اون طرف نگاه نکنیم با لباس خود با خود با حتی سنگریزه که زمین هستند اونا هم این طرف و اون طرف نکنیم میاد در نماز جمعه رسول الله فرمود که شما وقتی آمده در زمانی که آزان شروع شد بعدا اصلا شما هیچ کاری را اجازه ندارید اگر سنتی میخاند درمون آفر آخر بخاند و اینجا کاملا ساکت بینشیند حتی اگر یک صحبت میکرد گفت اون را گفت طاقت بشوید امیرم برخلاف خنوت برخلاف اون اطاعت و سکوت که متاسفانه بازی از ارذوشان دمن دو گزارش می دهن در وقت شما سخنرانی میکنید حتی در وقت خطبه عربی خونده می شوات هنوزم باز اون طرف جلسه دارند و صحبت میکنند سخنرانی میکنند با خود حرف می این واقعا برای ما خیلی مشکله ثوابی کہ خداوند در نماز جمع قرار داد دا این مسیری که ما تیمی میکنیم شیطان میخواد به اندک مسئلی اون را از دست ما بگیرد و یک جمله صحبت کردن اینجا که آمدیم باید کاملا قاند ساکد و آرام وقت قرآن می میشمد و اذا قری القرآن فستمیو له گوش کنید قرآن روگان ستول اللکم ترحمون سکوت تا رحم خدا می ربانی خدا رحمت های خدا نازل بی شما صفت سیم قنود یعنی اطاعت خدا و رسول الله اطاعت است خدا و رسول اطاعت الله و الرسول اما دیگران می فرمائن که فانت نازاتم فیشین فردو الاللہ و رسول اطاعت دیگران مطلقانیش فقط اطاعت الله و رسول الله دیگر امیلی باشد یا شوهر باشد یا امیل باشد دیکسه باشد سرپرستی داشته باشد اطاعت مطلق لازم نیست وقت اطاعت الله و رسول الله هست ما بیم فرمین که وصادقین وصادقات صفت چارم راستگویست یعنی این صفت در اینجا آمده هر که دا صفت را داشته باشد خدا اون را همون طوری که آل بیت را خداوند فضیلت و مزداد این را میدهد سفارت چهارم راستویی است و مسئله معروف هست که که اگر دروغ نباشد دروگوی نباشد هیچ جنایت فنحان نمی شود هیچ خیانتی فنحان نمی شود این دروغ است که روی همه سرپوش میگذارد و در حدیث قدسی که من می خانم همیشه در خطبه راستی انسان را نجات می دهد و درو انسان را به حلاقت می رساند نابود می کند راستگوی صفت چارم هست ایک بزرگی می گوید ای صداقت بر تو رحمت تو راحتی یافتن ای خیانت بر تو از تو زحمت یافت دروغ گوی یک چیز خیلی بدی هست و خصوصا در ایک حدیث میاد که از سلطان و لایق کسی که قدرت نارد اون دروغ نمی گرند برای اون دروغ گفتن لحظر لایق نیست که اون دروگ بگوید برای چه دروغ بگوید و بدترین دروگو همون کسی هست که یک مسئولیتی را قبول می کند و به مردم خیانت می از وقت میان خیلی وعده عجیب و غریبی می همه پشت سر وقتی که مسئولیت گردنشان افتاد همه اون به اسلام وعده ها را پراموش می کند از وقت من میگویم اون کسانی که عنوان نمائنده مجلس یا نمائنده حتی پستای بزرگتر امانندر یاد کنپوغی من ہمیشہ اون جای من کہ من می گویم کہ چار چیز در وجود شما باشند یا پانچ چیز در وجود شما اولین صداقت راستی دیانت صداقت شجاعت خدمت امانت داری اینا باید در وجود شما باشن و شما بھی ایدو اونرا اودرا کاندیدا تور بکونید و کاندیدش شوید و مسله دروغگویی است که دروغ چیز خیلی بدی هست و همه گناهان را میپوشاند و مثل پنجم صبر هست و صبر در سه میدان همیشه من گفتم صبر در اطاعت خدا انسان صابر باشد در عبادت خدا خدا و صبر در صبر از گناه یعنی از صبر بخواند و مرتکب گناه نشود و صبر صبر در مصیبت وقتی که مصیبت میاد انسان باید صبر داشته باشد. خداوند در وقت مصیبت از ما صبر خواسته. الّذین اذا هم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون و انا لله و انا راجعون همیشه برطرف زبان ما باشد و صبر در میدان احساات صبر در از از گناه و صبر در وقت مصیبت صفات ششم خضوع و تواضع است که در وجود ما خشوع و تواضع باشد توازو و فروتنی یکی صفات خوبی انسانه حضرت عمر فاروق رضی الله و تعالی می فرمند شما خود را کوچه حساب بکنید در دلتان مردم شما را بزرگ می داند. اگر شما خود را برتر از دیگران می دیگران شما را جویم حساب نمی کن خشوع امون است که انسان توی دل خود را از همه پایین تر بداند و چشم عزیز همه دوستش دارن چون خود را نمی بیند الله عبدالله انساری جمله دارن که عیبت بزرگ بر کشیدن خود که خود را بزرگ حساب بکنه از جمله خلق بر گذیدن خود را از مردمت دیده بباید آنگو اون قسمت سیاهی که دیدی چشم از اونجا هست اون مردمت می گوین. بگه از مردمت که دیده بباید آمو دیدن همه کس را و دیدن خود را به این مگن توازو به این مگن فروتنی و بر خلافش غرور و تکبر هست بر خلاف این غرور و تکبره تکبر یک انسان تکبر داشته باشد غرور داشته باشد از همه خود را بزرگتر بداند اون در این میدان شکست میخورد در جنگ هنین مسلمانان دوازده هزار نفر بودن در جنگ بدر سیسد و سیزده نفر بودن در جنگ بدر خداوند میفرماید که ولقد نسركم الله ببدر خداوند در بدر شما را نصرت کرد وعنتم الله شما خیلی کم بودید اما در جنگ حنین که غرور مسلمانان را گرفت از عجبت کم قسرت کم تعداد شما جماعت شما به شما به تعجب آورد اما در اینجا بود که مسلمانان شکست خوردند نشه تسته که دائمی باشد در ابتدا خدا ازاقت علیکم الارض بما را زمین بر سر شما تنگ شد نمی توانید سید که خدا تر افترار بکنید اما خداوند سکینه و آرامش را آورد و غرور را کنار بگذارید که شکست در اینجا است. خود پسندی را کنار بگذارید که شکست در اینجا هست در کتابای ادبیات عرب هست یک شخص عالم برجسته بود وقتی که علمشنا تصور کرد کرد که من همه چیز می دانم ممبر، منبر سرونی اما شئتم هر چی که می خواهید از من سوال بکنید من شما را جواب آدم استادی بلند شد در قرآن سلب زامدن مالفتیل والنقیر والقتمیر فتیل و نقیر و قتمیر یعنی هر چی هرچی فکر کن تا این ستارا نمی داند نفتیل شمی داند ننقیر شمی داند نفتمیر شمی داند بگه فقط اما طبیعتش خراب خود و خجل خجارت کشید و نظل از منبر قائل آمان فورا چون آدم محروری بود تب این را گرفت و رفت خانه خودش رو بید اون کسانی کا کار خانهش بیدن که بستر آره من دوتا پتو بیندازید که من مریضم دیکی زیر پتو رفت دید که این ستا لفظ از همه آسان تر پتیل اون نخی که وسط حسته قرما اونمی گویند عرب ها و نخیر اون نکته سیاهی که پشن حسته قرما از اونجا قرما سرد می شود اون را نخیر می گویند وقت حسد حسد خرمان و قتمیر اون پوست هست حسد کے وسط حسده قرمان و قرمان هست. او چه شد که منر ندانستم بادن و سن بلے اون غرور بود اون تکبر بود که تو انا را ندانستم در حال ایک فیضا ہوا افسرا ناسبه بیناترین شخص آگاترین شخص به اون سے موضوع بود ملیمی فرمائے کہ خشوع و توازو یکی از ان کوال خاشعین و خاشعات و ثابتین و ثابتان جلوی شد. بعد می‌فرمان که و ثابتین و ثابتان برای خدا. و سفته دیگری که در انجامیان انسان و تازاد دخ بزوافا و مساقینه. خداوند به انسان مالی زده، پولی زده، سرورهای زده. باید به زیر دستان اون کسانی که ضعیف و بیوزاعتن دونا کمک بکند قرون خیلی مال زیاد داشت اما ایچ احسانی نمی وقتی که به اون می که شما در رای خدا در سوره قصص هست در آخر سوره قصص خداوند یک رکوع را در بار قرون نازل کرده از قرآن یک رکوع. نقارو قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فِسَرَابُوِ مُوسَى بود، از نزدیکان موسَى بود. اگر بغا علیه خیلی گمرا شد دعا کن خداوند اگر به انسان مال و سروت می دهد گمرایی ندهد فول می دهد گمرایی ندهد برایی که بعض وقت ان مال سبب گمرایی می شود قرآن در ایک جاییم فرمین که الله بسط اللہ رزق لعبادهی لبغاو فی الارض اگر خداوند روزی را زیاد بکند برای انسانها اینا در زمین گمراه می شوند و صفت در وجود قارون بود مردمی خوب می گفتند احسن کما اصن الله علیک با خلق خدا قرم کن چو خدا با تو قرم کرد با خلق خدا انسان سان کن خدا بر تو انسان کرده اون می گفت که اوتی تو علا علم اندی من زامت کشیدم همه چیز از اندار دانو شو علم خود گرفتم من این را شود که مجانی در اختیار دیگران قرار بده اما وقتی که علم کار رہے ہیں اون جملہ ناون نا گفت خداون می کنیم فخطفنا بهی وبدار الارف بخرج علاقوں میں فی زینتی هی فا زینت و تجملات و آرائش و با همه چیز بیرون آمد ما خداوند این و غرور نفستندید. میگه فخسپنا بهی و بداری الارض. ما اون رابا خانه اش داخل زمین بودیم و در حدیثی اس رسول نامی فرمایند که اون هنوز هم گویا که داخل زمین می‌درد یا تجل فی الارض. این چه بود احسان با خلق خدا ندارد، خوبی با خلق خدا ندارد. اون احسانی که خدا بر اون کرده بود بر اون احسان ندارد. جدا صفت هستند من همین طور پیرستوار بیان می کنم صفتی هشتم می فرمند که کنترل شهوت هست که انسان شهوت خود را از حرام پوری شکم خود را حفظ بکند و از زنا و کارهای بد وجود خود را حفظ بکند جمله ای که آخر ذکر می شود می فرماید که مصائمین و صائمان این روزه گرفتن در حقیقت این کنترل شهوت که امام غزالی رحمت الله تعالی علیه فرمائند که دو تا شهوت هستن که انسان را نابود میکنند یکی شهوت شکم هست و دوم شهوت شرمگاه هست که انسان را به نابودی میکشاند و انسان مؤمن باید عم حوایه شکم خود را داشته باشد که حرام در اونجا نرود رشت حرام روزی آرام پولی که از جای حرام است رشوه و فلان هست اونجا نرود و دوم وجود خود را از زنا نگاردارد که خداوند اون ویا که فرهیز فرهیزگاری را در ضمن روزه به ما نشان میده که وصائمین و صائمات و آخرین اون که وجود خود را نگاردارند و الحافظین فروجم و الحافظات که چه زن هستن چه مرد وجود خود را از زنا نگاه دارد. و این زنا هست که جامعه را به نابودی می کشاند. امروز در دنیا امراض مختلفی آمدن که همه اطباء همه دانشمندان همه پزشکان از علاج اون آجز هستند اون امون شعوت شرمگاه هست و شعوت که ها را به نابودی در بیبند بندوباری هست افتزان و بیبند و باری. این یکی از گناهان خیلی بزرگ گناهان کبیره، و هم هستم در رفتای گذشته گفتم و اینم خدا در اینجا جد سفات مؤمنان گفته و فاکی بدن با روزه هست و فاکی وجود همین که خود را از دنا و از کارهای بد نگاه دارد و آخرین جملهایی که خداوند میفرمایند کن جفاقی دامن و عیفت و آخرین جمله ذاکرین الله و ذاکرین الله و ذکر خدا را زیاد بگوید و تلاوت قرآن بهترین ذکر خداست. نکم ما قرآن را بخانیم بهترین ذکر خدا افضل از ذکر سلامت قرآن. هر روز با بکنیم که سلامت قرآن داشته باشیم زمین که نماز خودش ذکره بعد از نماز سبحان الله گفتن سیوس مرتبه آلاء گفتن لله گفتند الله الله وگر گفتند این همه ذکر خدا هستند و تامین آیه ثمان صد و در خاتمه خداوند میفرمایند که ای مسلمانان چیالی بهتی پیغمبر استید چه جوزه امت رسول الله هستید عدالله لهم خداون برای این طوری انسان هم آمده کرده مغفراتاً گناهان شما را مغفرات می کند و ادران عظیمه یعنی این دا صفت را شما امین آیه سی و قنج سوره احضاب را تلاوت بکنین دا صفت را در وجود خود بیاریم خداون تضمین کرده که شما آل بهشت می گناهان مغفرات و بهشت نصیب می که به عنوان عجر عظیم تابیر صده هم اینجا اکتفاق می کنم یک دو نقطه هستند اونا را من برای شما بیان می کنم و انشاءاللہ تبلیغ خاتم همی چون وعده کرده و سر روب من نماز بخانم علاچند چند غیره گذاشته می بخشید اولی مثلا ذکر تفلیت به مناسبت این حادثهی که در تیران رخ داد ساختمانی تقریبا پنجه و شش سالهی که در قلب تهران بود ای گرفت و بعضا فرو که تعداد زیادی از ماموران آتش نشانی که جان فدایی کردن در اونجا فوت کردن، مسدوم شدن و بعضی سال هنوزم زیر آوار باشند ما دعا می کنیم که خداوند متعال اون کسانی که فوت کردن اون را مغفرت بفرماید و شان را بالا ببرد و اون کسانی که مصدوم هستند اللہ زلجلال اونا را شفای این آیت بفرمین و به بازماندگانشان خدای متعال صبر و عجر این آیت بفرمین این یک مسئله که ما امدردی خود را از امینجا و اون عزیزان اعلان میکنیم کنیم و مارم شریک اگام خود بدارن و آفین ماموران بودن که رفتن آتش را خاموش بکنن مردم را نجات بدن خودشان ایسار کردند و پدار شدند در اون میدان این بسیار چیز خوبی هست که مسلمانان این طوری گری گریبی چیز ها در درست باشند مثلا دوم استاذ حدیث ما که ما در کراچی با اون درس می خاندیم تقریبا هفتان سال اون فقط درس حدیث یعنی کتابه حدیث درستی نوید یک سال سن کرد بود که همین افتانی گذاشت کوت کرد و خبر قاطعون وجود من را تکان چون سه کتاب حدیث را سعی بخاری و سنن ترمیزی و سنن عبی داود را من با اون استاد خانده بودم اون سالی که من شاگردش بودم تقریبا گفت که من سی سال است که دوره حدیث درستم سنش پنجا سال بود از سن 20 سالگی بس که شاگرد درنگی بود از سن 20 سالگی اون را شیخ الحدیث گذاشته بودن شیخ الحدیث مولان آسالی مولا خان که اصالتا افغان بود و پشتون بود و بعدا به هندوستان رفت بود از به حراسی آمده بود و در چندین مدرسه تدریس میکرد مفتی ممتقی که همهش مثل شنیدن ایک از شاگردانش بود مفتی شامزه این که بعد مستاد ما بود شاگردانش بود و در ایران شاگردان زیاد دارد مولانا شحاب الدین مولانا نظر محمد دیدگاه مولانا عبدالعزیز آل... اللہ عاری مولانا نحمد توحیدی و مولانا مولانا خدا رام و حداد زیادی از علماء بنام ایران از شاگردان اون بودند امام یک سال بر اختیار کلاسو اون بودین زانو ایتلا مزد زده بودین چه علاقی دار تا دو شب غای ما را درس می داد تا دو شب یعنی کتاب های حدیث نیات بودن از صبح که می آمد می تا دو شب ما سر زشتش بودین اون چنان استقامت داشت چنان شجاعت داشت چنان تقوا داشت چنان فریضه کاری که از حد گذشته خداون انشاءالله که اون اونرا چونه بندگان سالی و با صالحان مشهور بگرداند. ام شنیدم ابتدای گذشته امام جمعه موسی بندر تورکمان آبی کورچن جنازه خاندم. خداوان این عزیز را در جوار رام الله خودش قرار بدهار. و اهدای زیادی از دوستان تعداد دعا برای مرازه کردن هر کسی که مریض است خداوند و اون مریضار شفاب دهد عن شنین سرمین افتر جنازه های لمن خانده امروز خانده